بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین و الی و صحبه اجمعین اما بعد اسلام عمر بود حثه گذشته بحث عزت یافتن اسلام با اسلام آوردن عمر رضی الله عنه و اندلاری که غلیه نراخه لداری که ابن عباس در خاتمه حیات عمر بن خطابش میگفتند وقتی که عمر اون ضربه شمشیر رو از ابول اولوی مجلس مجلسی خورده بود دلداری بهش میداد و بهش میگفت کن عزت مندو، ان اسلم تیع امار یما همچنان عزتمن مدید وقتی که تو اسلام رو بلکه بله خاتمشن ختمش مست بود و شهادت همونطور که آرزو داشتن عمرادم خطاب امیر المؤمنین دومین خلیفه مسلمان ها از دنیا میرند خاتمی بحث گذشتهمون بحث احادیث ضعیفی بود که در زمین اسلام و عمران و اومده بود بحث خواهرش و اینکه که بالا صحیفه ای که داشت و خواهرش که چون تو مسلمان هستی مناجیسی و این قصه که گفتیم اکساسی از لحاظ حدیثی که نداره و خیلی هم ضعیفه و بهش استناد نمیشه میریم الان به مبحث بعدی و اونم قصه احادیتی دردناک و خیلی تمانگید شعب علی طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم در سالهای هکتم و هشتم و نهم تقریبا مدت دو سال در شهد عبی طالب به سر بیبرند مشرکین به تنگ در اومده بودند دیگه بازارشان کساس شده بود دیگه کسی نمی که کسلاهاشو بیرید دنبال یا کنار بودها بود نمی دونم اون معبوداتی که می پرده دنشون روایت ها اومده هرچنالا خیلی این روایت ها در بحث اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم چطور شد که مثلا دل فرز بشه بابی طالب و چی چی سبب شد که با اونجا کشانده بشه رو با چه اثرش ضعیفه لیکن اصل فرز ثابته این که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدت دو سال در شعب بابی طالب به تر و خوبش مشرکین با این وجود که مشرک بودن یعنی آدم تعجب میکنه غیرت اون اشخاص و اون خوب و اون اشاعر عرب یعنی بوی وجودی که بن هاشم بنی, بنی عبدالمطلب کافر و مشرک بودن شانه یا کمر پسر رو خالی نکردن نگذاشتن رفتن پوشش ایجاد دادن در شعب ابی طالب با اون تحریم اقتصادی تحریم فرهنگی تحریم فلان و فلان و نه آب و نه غذا تحمل کردن تا جایی که خودشان صحابه میگن ما خار رو می‌خوردیم و نمی‌دونن پوست مردار می‌خوردیم و یعنی چی چه چیزهایی که نمی‌کردن در اون دوران صحاب را این یکی از درس‌ها که ما پشت برادر مسلمانمون را خالی نکنیم دیدیم حق برادر مسلمان این ضایب ازش دفاع بکنه این از اسلام ما نگاه بکنید مشرکین چطور پشت به سر اموش می ایستن با وجود که مخالف باهاش مخالف هستن پشتش خالی نمیکنن ایستادن همچنان از دفاع میکنن در شب و با اون نمیدونن با اون شکنجه ها و با اون درده ها و با اون بی و بی آبی میکنن پشتش ایستادن این یک مسئله و مسئله بعدی که در این قصه هست اینه که انسان هدفش از زندگی بدونه. انسان برای چی زندگی در؟ برای چی میخواد زندگی بکنه؟ آخرش خاتمه چیه؟ هدف از اسلام مسلمان بودنش چیه؟ هدفمون اینه که خدا ازمون راضی باشه چطور میشه خدا ازمون راضی باشه وقتی که در مقابل دین احساس مسئولیت بکنیم. این ها کوشش کردن، زحمت کشیدن زن و بچهش راها کردن خونشون رو فدا کردن برای چی؟ برای که اسلام به ماها برده آیا ما هم مثل اینها قد شناس بودیم از وقتمون از نمیدونم از طاقتمون از توانمون از طولمون دادیم یعنی باور بسنید آدم تحجم میکنه این روزها خیلی ها زورشون میاد ده بیسه زارتمنی که برای بچهش بیارند مستب زورش میاد که بده این ده بیسه زارتمن که حقوق اون اُستادم تا کنه بشه اون هدینه ای که بلفرز برای اون فرزن میشه زورش میاد که برای قرآن هدینه بکنه که بچه‌اش یاد بگیره تربیت بشه این خیلی واقعا مساله دردناکیه که انتون از وقت خودش نداره این تربیت هایی ها رو عوض می‌کنی اسلامو دوست داشته باشیم از اسلام دفاع بکنیم سعی بکنیم با اخلاقمون اسلامو در خونه میاریم طوری بچمون بفرسته نه با زور نه با کتک طوری باشه که ما اسلام را با جذابیتش با میل و رغبت از خودمون نشون میدیم تا پچه یاد بگیره رسول الله صلی الله علیه و سلم نصف شب بلند میشه قیام اللیل میخونه ابن عباس بلند میشه بغلش میته نماز میکنه نمیدونه الا سمت چپش میترسه رو بلند میشه سمت راستش میاره بچه بی یاد میگره. بچه دنبال اولوید. وقتی که پدر خوب شد. پدر پتک نزد. وقتی که پتک پدر نه در خونه قرآن خوند. ابراز علاقه نسبت به دین کرد. که که وقت نماز بیاد به مسجد بچه بیم بریم مسجد دوست دوستی برقرار کرده. و هش خود به خود بچه یاد میگیره. گفتت ابن عباس خیلی کوچک بوده. پنشیش ساله بیشتر نبوده. میسته بقیر رسال نمازت خیلی‌ها وقتی که رسوا این قصور قران نبین، البقره و آل عمران و انعام و فلان و فلان خونن، بعد چه می‌ت تحمل میکنه؟ چون می‌بینه که چی؟ الگویونی که اون شخص با اخلاقش چطوری نماز می‌کنه. ما هم چنین بریم، چی میشه؟ حالا حداقل نمی‌تا بهتون رمضان هم نذیک، خودمون هم همین وقت تربیت بکنیم. یاد بدیم، مو هم یاد به تربیت داریم ولا تربه حشم سنگینه واسمون. دیکری قران رو برداریم که خونه همونطور که رسول الله علیه و سلم فرمایان، مسجد خونه هاتون رو تبرکون قرار ندید. قبرستانه که دیگه دیگه کسی تو اونجا خواب بانده شد دیگه کسی طرفش نمیره خونهتون اینجوری نباشه نماز توش بخونید قرون توش بخونید بچه بذاره یاد بگیره از مادر یاد نمیگیره چون مادر دیگه خیلی عادی شده مثل یک بچه ی نگاش میکنن یعنی آدم اگه توجه بکنه تو کنهش وقتی که مادر بهش غذا میده نمیخوره ولی پدر بیاد توری میخوره چرا چون پدر دوست داره پدر میگه فلان میخره و فلان میسازه بذاری الگو باشه تو نمازای نمازهای سنتو بخونیم حداقل قرآن بخونیم با تشویق ها بیاریم به مدرسه مکتب خانه ها با دل و رحمت نه با زور و نه با خیلی مهمه گفتن احتصاص در مقابل این اسلام خیلی مهمه که باید اینو زنده بکنیم در خونه هامون. این حسی که الان مرده ها. در روایت اومده که در سال نهم همه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم چلو سال سند داشت، حادثه این شد عبی صالب خاتمه پیدا میکنه لیکن قبل از این که خاتمه پیدا بکنه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این ماجراها ها می‌کنه، گیر میکنن نمیدونن چی بکنن مسلمان ها را تشویق بر برکنه به حبشه دیگه راه به حبشه باز شده دیگه ها شروع میکنن به هجرت کردن اونهای خصوصا اونهایی که از بنی عبدالمطلب نیستن ها شروع میکنن به رفتن والا همچنان ادامه داره که قبل از حادثه عمر اسلام آوردن عمر قبل از سال 6م بازم بحث شروع شد در سال پنجم بعد هجرت به حبشه شروع شده بود رفتن ها تخمینه مکه مکه الان خالی مسلمان کش بنی عبدالمطلب هم و بنی هاشم در شب امیت تول به سر چی میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون تنهایی وقتی که اصحابشون میرن وقتی که اون حادثه در ناک رو میبینند می که این چنین دارند عذاب و شکنجه میبینند رسولان تحتش رو به دعا برمیدارند و دعا میکنند که یا رسول الله خودت به داد ما و با مشرکین هم همونطور که با ما برخورد میکنند برخورد میکنند مشرکین چی میشه بعدشون بعدشون چنان میشه که سختی و خوشتالی میشه که چیزی برای خوردن ندارند آلا دست به گریبان گیره رسول الله انتم الله علیه و سنب. ای محمد بیا دست به دعا بردار تا اون خدادز بکنید خدا خدای محمد رو قبول داره سبحان الله ولی چی فی سببه که اینا نمیخوان مسلمان بشن مال ثروت جا مونده قلهی کلام نمیخوان چون مكانتشون از دست میره چون اون پولی که بهشون میاد از جیب مردم دستشون اون پولی که راحت به راحتی میاد دیگه خود به خود مادرشون کذاب میشه و کات طرفشون نمیاد میاد درخواست میکنه از رسول الله الله علیه و الیهم که این حالت خوش‌خالی از بن از دین بره به رسول الله تش میگه که بله که ما ارحامی قرابت داریم شما قرابت ندونیدی بس که رسول الله بهتون کردید الان میگید که بله ما سرحیم و ارحام با همو نزدیکی با هم رسول الله الله علیه و الیهم با این تعیداد این آیات را ثروت میکن سبحح بیا و م سما و به دخان موید. دیگه آا آماده باشید روزی که هم آسمون میاد با اون دوده های با اون دوده هایی که خیلی بر می داره با اون دیدنش. میگه که الله خود وقت در اینجا چینه ح بیوم و م سما و به دخان ممید، خود وتان اقرار میکنه میگه تا جایی بود یعنی اون حالت تکنویایی که به من دست داده بود، تا جایی که ما آسمان را تیره میدیدیم میدیدیم که یک دخانی یک دودی داره میاد از گرسنگی از تشنگی هیچی برای گذر ندارن رسول الله صلی الله علیه و سلم با اون نرمش، دل, دل رحیمش دعا میکنن ای پروردگار این عذاب را از سرشون بردار اونها با وجود عزت ماتی با وجود به اقرار اینکه خدای محمد صلی الله علیه و سلام این مصیبت‌ها را نشون داد کرده با این وجود دوباره به کفرشون برمیگردن به همون بتراشی و به همون مبارزهشون بر رسول الله صلی اللہ علیه و سلم یک حادثه ای تلخ نا الان رخ میده شب ابی طالب تمام شده دو سال رسول الله صلی اللہ علیه و سلم در اون تنگنایی زندگی کردن الان از چه بیرون میان چه حادثه ای رخ میده در سال دهم ده از مبعث از جسدت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ابی طالب عموی رسول پاک پشت پر رسول الله صلی وسلم بود کسی که رسولو نصرت میداد و ناراحت میشد از اینکه کسی رسول خدا را آدم اذیت بکنه و نمی گذاشت از اذیتش بکنه مریض بشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میاد کنار عموش و دعوت به اسلامش میده میگه ای عمو بیا وارد اسلام بشو تا اینکه روز قیامت از دفاع بکنند رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که این چینین عرض میکنن وقتی که بهش می گم بارد اسلام بشه و شهادتین این بگو ابو طالب میگه گه لولا انتو ایرونی بها قریش یقولون انها انما حمله عليها علیها الجزع می اگر من الان در آخر عمرم این کلمه شهادت این رو بگم دیگه الان ملزون من رو زش می پندرن نگاه بکنید بخاطر دربی که داشت پشت به آبا و اجداد اجداد و مسلمان شد میگه ای محمد اگر این نبود لأقرار تو بها عینک من چشمتو روشم اگر این نبود یعنی اگر منو زشت نمی کردن زشت نمی ساختن بدیم نمی من چشمتو روشن میکردم اسلام میبود میدونه اسلام دین حقه خداوند بعد از این حادثه ای که الله اصرار میکنه رسول الله بر این عموش مسلمان بشه ولی که نبو لحب نشسته آیا می‌خاید خوش بدین زین تدران اجداد؟ خداوند برای دلداری رسول الله صلی الله علیه و سلم این وحی برش انك لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ای رسول خدا هدایت دست نیست که هر کسی که دوست اونها بکنی بلکه اون پروردگاره است که هر کسی هر کسی به خاطر عدالتش میکنه بله عدالت از خدا فرزندمون نمیدونم پدرمون دست ما عدالتش ند، نه برادرمون نه فرزند هیچ کس هدایت دست خود منده اون چیزی که هست ما وسیله این باز سعی و تلاشمون بکنیم تا این که اون بشه همونطور که می میبینیم رسول الله تخت نشستن تا اینکه اموش مظلوم ما بشه عموی رسول الله (ص) ابو طالب با شرک از دنیا میره و مسلمانم نمیشه به هر روایتی به هر طریقی به هر فلسفه ای اومده در این که ابو طالب مسلمان شده و با اسلام از از دنیا رفته همه روایت ها یا دروغن یا اینکه اساسی تا اسنادم نداره اسناد یک سازه بافیه یک خرافات بافی چون پدر علیه پس باید پدر علی مسلمان باشه چون نمیدونم امامه و چون فلان پدر امام هم باید مسلمان باشه مؤمن باشه با این فلسفه بافی بذارید کنار با چه اساسی با چه استنادی با چه مدرکی بحث مدارک بحث احادیث بحث روی سندهایی که ما مدارک را در این نهام ارائه بدیم در اثبات یک قضیه این قضیه نیست نه بلکه نهام بلکه قضایا برذرهونه اون احادیثی که ما داریم در صحیح بخاری و در صحیح مسلم جلد هشتم صفحه 6 در صحیح مسلم صحیح بخاری و صحیح مسلم جلد 1113 این که ابو, ابو تعالی با شرکت دنیا میراند و راضی نمیشن کلمه توحید را بگن در بعد از روایت ها اومده که عباس ابن عبدالمطلب برادرش نگاه برادرش میکنه و به رستم الله علیه و شدین چنین میگه میگه یا ابن اخی والله لا قد قال اخيك الكلمه التي امرته ان بگوید میگه ابتسره برادرم نگاه بکن که لبونش کپون داره میده به اون چیزی که بهش گفتی بگه فقال رسول الله اما انی که من این چیزو نشیدم یعنی اون شهادتین نشه این روایتم بازم هیچ اساسی نداره سنداش همش منقطی یا اینکه اصلا خط شده حتی اصلا دو نصر از هم دیگه نشنیدن یا یک شخصی از نمیدن بعد از دیری سال اومده این واقعه رو نفت کرده پس این حادثه هم بازم از حوادثی هست که ثابت نیست وقتی عباس و اینکه بله برادرم داره کلمه توفید رو میگه ابو طالب از دنیا میرند فوت میشن. رسول الله صلی الله علیه وسلم خوششون از دست میدن میمانند حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها که در همان سالن باز وفات میکنند سه سال بعد از اونم رسول الله صلی الله علیه و سلم مینا به مدینه بحث ابو طالب ولا بحث ابو طالب که رسول الله صلی الله علیه و سلم همشرا هم دعا میکردن در حق ابو طالب که را حدیثی حدیث تو ذهن اوماد دعا میکردن که عذاب اموش به خاطر همین نصرت و به همین نمیدونم کمک به رسولت از رن دعا میکرد که خدا من عذابش رو کم کن رسولت هم میفرماند کمترین عذاب روز آخرت برای مشرکین عذاب ابو طالبه میگه تا جای پاش تا ساق پاشه میگه که این عذابش در جهنم تاری کمترین عذاب طوری که مغزش به قلیان در میاد دیدی که تو به که جوش میزنه مغزش به جوش میاد از حرارت و از اون عذاب درناکی که در جهنم هست از اون شدت عذاب از شدت حرارت فاهاش تا ساقش تا دوتا تو آتش جهنمه ولی که مغزش جوش در میاد از حرارت زیاده اون آتش جهنم. میگه که از خدا خواستم دیگه خدا خیلی دعا قبول کرد تا تا آخرین ساله های رسالت رسول الله صلی اللح... الله صل علیه و سلم که این آیات نازل میشه بر این که رسول الله دیگه از این به بعد حق نداره در حق مشرک دعا بکنه چون رسول الله اصرار داشتن که خداوند عبو طالب را بیاموزه دیگه آیات قاطع نازل میشه و حالا ما من بر بگردیم به تمامی کتابای تفسیر که اصباب نزولش هم اومده که این در شنه که رسول الله دعو می در حق ابو طالب بد نشود ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین مؤمنین رسول حق ندارن به اینکه طلب استغفار بکنن برای مشرکین ولو كانوا قُربا قُربا هرچند که نزدیکانشون باشن نم بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم بعد اینکه زب بهشون روشن شد که اونها جهنمی اند رسول الله صلی الله علیه و آله اجازه نداره که حق خداوند حق نداره که برای اموش طلب آموردش شو سقفار بکنه مشরিক شد از دنیا رفت جهنمی شد دیگه با تاج ما هم حق نداریم این کلا بر آتش دو تا واقعی تلف. بعد از واقعی تل این دو سال شکنجه و درد الان هم بعد از اون تنهایی در اومدن در این واقعی تلخ دیگر از دست دادن اموش و همسرش راه چاره داره در دور دنبال می‌گردن یک راهی یک چاره ای برای خودش در رثه رسول الله صلی علیه و سلام بیان و ازش فرار بکنه الان دو پشته کسی دیگه بیاد از, از, از دفاع بکنه قومش بهش پشت دادن و الان کسی نشه دفاع بکنه بحثمون خاطر نمیدیم به رفتن رسول الله صلی الله علیه و به طائف برای اینکه کسی پیدا بشه ازش از از دفاع بکنه کسی برقدر نفرتش بده بیاد پوشش بیس بیس تا اینکه کسی نیاز خونش رو بریزه به ناحق چون اصل فضیه شببی طالب اگر ما نگاه کنیم از واقع تاریخیش چنین که مشرکین قصد کوشته ر رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر همین به بن عبدالمطلب برخورد و آمدن ازش دفاع کردن خواستن خون رسول الله بریزه الان با کشته شدن ابو طالب دیگه اون پوشش بین رفته و الان میتونن راحت به مقصدشون برسن و رسول الله رو بکشن حالا دنبال کسی هست رسول الله صلی الله که بیاد ازش دفاع بکنه و نذار کسی دهش روش بلن بکنه میرن به طائف به امید این که کسی پیدا بشه ازش رفا بکنه. چون مسلمان الان گفتم دیگه نیستن حبشه رفتن. میان به طائف. میان به طائف و دعوت میکنن و حدیث آیشه چنینه. که میگوید از رسول الله صلی الله علیه وسلم سؤال کردن هل اتا علی که یوماً کان من یوم اشد؟ آیا روزی هم سختر از روز اشد دیدی؟ جنگ اشد؟ روزك كه افتخار در فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم ديات قومت چي سختی رو ديدم و يوم العقب نها من نوع عقبي صائف و كنود روز عقبي صائف كراته بود على ابن عبد ابن عبد كيلال فلي فنم يجبني الى ما ارى قراتهم جدا دعوتهم اون كردتشون ابن عبدالله ابن عبدالله دعوتش دادم به اسلام که نفه دیرفت فانطلقت و انا مهموم على وجهی که بعد از اونجا از طایف برون اومدم و با و اندوه رها کردم طایف فلم اشتفت الا با قرن میگه، دیگه میگی می که با خودم نشدم خواستم نبود که دارم چی میکنم و کجا میرم تا اینکه که با قرن از طایف اهل مکه چند کیلومتر دور شده از طایف بس الله صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسي فرفعت رأسي فإذا انا بصحابة قد أضلتني لي كثر بلوبلدا بدمك أرب ولا يسران فنظرت في فيها فإذا هي جبريل هي النجاح علما بدمك جبريله فناداني فقال فرست ددد جوف إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك ليغرضان خطاب قومت عن قبيلة رشيد و ما رد عليك و ان چه جواب دادن و قد بعث اليك ملک الجبال لتامره بما شئت فيهم میگه خداوند برای این قضیه فرشته کوه ها را فرستاده تا اینکه هر چه بخوای انجام بده قال فنادانی ملك الجبال صلی الله علیه و سلم میفرمایند فرشته کوه ها مرا صدا زد و سلام علی فبر من سلام فرستاد ثم قال یا محمد إن الله قد سمع قول قومتك وأنا ملف الجبال لخذ من قول قومته شنيش فمن فرشت كوهات سام وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك خذ من مرف في فرش ذلك الحرش أنبكني عن جامدان فما شئت ان شئت أن أطبق عليهم الأخشاب عجرا بقاهي من دتقوه أشام دتقوه مكة هو بهام إذا لم يكن ذلك نسنو بيدشان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا يقول رسول صلى الله عليه وسلم يقول من تمع درم ورزو درم كأز كمرة إنها أشخاص بيان أز, أز نفب إنها أشخاص بيان أز همين أشخاص كثاني بيان في خدرة بترستن وحيش شرك رب الخدران نيري, نيري بلد همین طور میشه اکرمه ابو جه یکی از بزرگان صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلام کاربر ابو جه از همین ابو جه کتانی مثل اکرمه میاد کتانی از بزرگان صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلام و غیر ابو سفیان مسلمان میشه معاویه مسلمان میشه در فتح مکه فتح مکه خیلی از مسلمان ها مسلمان میشه مسلمان میشن اون هم حالا در اخران زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم. و رسول الله صلی اللہ علیه و سلم بارزوش رسید و قومشان مسلمان شدن روایت هایی ضعیفی هست در قضیه رفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم به طاعت اونم که وقتی که در زیر درخت نشسته بودن گفتند دست به دعا برداشتن این دعای مشکولی هست اللهم اشگو الیک ضعف و قوتی تا آخر این دعایی که هست این روایت بازم از غبات های ضعیفی که هرچند که از طرق های مرسل است کسان که از صحابی شنیده لیکه باز هست است. قطعه اقناد متصلی تابعی کسی که از صحابی شنیده الان صحابی وجود نداره خب خود خود مدرک چی کی از کی شنیدی نیست در این قضیه صحابی وجود نداره ما هم نمیتونیم بپذیریم وقتی که اقناد منیشینیم باشه مثلا به شخصی شخص شیخ میگه خبر میده که شلون کس اینجوری این حرفی زده چه میگی میگه این روایتش قابل قبول نیست ان جاءكم صادق بنبأ فتبينوا این بين بشی شنیدی خودت با گوش خودت این چنین واقعه یا دیدی چه نیو از یه دو تا طاره دیدی این قضیه این استاد اینجا منقذ و معلوم نیست از کجا اومده در نتیجه ما نمی تونیم بپذیریم اصل این, این روایت این خلاصه بحث هجرت رسول الله صلی الله حیث و رکتن رسول به طایف این هم از دلائل دیگر از رحمت رسول الله صلی اللہ حیث چقدر نهربان بودن فرشته میاد آد که انتقام دیگر بادم روزی نمیشه شب عبی طالب یک جهت اینجا هم جهتی دیگر با وجود این همه تقریه ها میچشه و میبینه با وجود روزی نمیشه که دعا بکنه این آخرین درسمون امسال بود انشالله تا بعد از رمضان. سبحانك اللهم و بحمدك سبحان الله و بحمدك دخول جماعت مير فضل الله علی محمد و علی آل محمد